بنده شکمم مؤمن نیستم بنده پولم مؤمن نیستم بنده مقامم مؤمن نیستم بنده وابستگی های گروهی و دستئی و هزبیم من مسلم مؤمن نیستم ما وابستگی جناهی و هزبی و گروهی و دستئی و یه حرفا رو مطرح نمی کنیم. ما بر مبنای درد دین و بحث الهی هر شکل وابستگی که ببینیم نوعی سرسفردگی و بردگی و از آزادگی اندیش انسان رو باز میدارد دارد به فرمان مولایمون علی و حسین و زهرا و دیگران لذا آمنو, یا آمنو اتخلو فه السلم ایمان یعنی آزادگی از غیر خدا سلم یعنی تسلیم خدا برای اینکه این معنا را آینشون بده ادامه میگه. میگه ولا تتبعو خطوات شیطان دنبال شیطان نرید دنبال اونی که خدا میگه برید تفسیر برهان جلد یک صفحه دویست تفسیر صافی جلد یک زیل این آیه دویست و هشت از امام صادق علیه السلام نقل می کند ات سلم ولا تتبع خطوات شیطان از سلم و و علی ابن ابی طالب و شیطان و, و فلان و فلان از و یا آیه ها لذین کسانی که ایمان آوردید خدا را قبول کردید میخواید الله و ولی لذین آمنو یخرج هم من از ظلمه و نور خدا شما را به عالم نور بکشاند اتخلو فسل یعنی دست به دامن علی و عل علی بزن علی و آل عل علی تسلیم انها باشی تسلیم خدایی چون نورن نوریان میخواهن شما را به عالم نور بکشاند ولا لا شیطان هر که در مقابل مکتب علی و آل علی قد علم کند شیطان است و پیروی اونها پیروبی شیطانه مولوی تشبیهی داره در مصنوی میگه یک آقای با یه بنده خدایی قرارداد جنایتی رو بست و عمل خلافی انجام بده به خانه اون رفت یه دفعه دیدن سابخونه داره میاد متوجه شدن که رو میشه این به این آقا اشاره کرد برو تو صندوق در صندوقو میبندم تا صابخونه بیاد و بره بعد در صندوقو باز کنم بریم اینو انداز تو و صندوق در صندوقو باز صابخونه اومد تو اتفاقا گفت که من امروز مشتری آوردم این صندوق رو بفروشم اینم جرئت نکرد بگه این خائنو تو صندوق مخفی کردم صندوقو داد به باربری ببرد تو بازار این میگه ای داد بیداد تو صندوق یه افتادم کیست که منو آزاد کنه از این صندوق آن سری که نیست فوق آسمان از هوس او را در آن صندوق دان اون کسی که توجه به با عالم بالا نداره گیر همین عالمه به هر نسبتی که ما گرفتارش شکمیم برده نیستیم به هر نسبتی که گرفتارش شهوتیم برده نیستیم برادر تو نمیتونی از نگاه یک دختر نامحرم بگذری بردهای دختر تو نمیتونی یه مقدار از تنازی و خودنمایی چشم بپوشی تو برده شهوت خودنمایی هستی آقای رئیس اداره تو در مقابل چار تا سلام خوب نکردن پرسنل تحت کنترل خودت خودت رو میگیری تو گرفتار هوای نفس خودت هستی برده ای آن سری نیست فوق آسمان از حوث اراد در اون صندوق دان چونز صندوق بدن بیرون شود اوزه گوری سوی گوری می‌رود. گاهی از این صندوق در میاد توی صندوق دیگه میره ای خدا بگمار قومی رحمان تازه صندوق بدن ما را خرند یک قوم خردمندی بیان مار ای در صندوق واکنن وا کنن ما را آزاد کنن اما را خفته کی کند بیدار اونایی که خودشون تو صندوقن چگونه میتونن منو از تو صندوق بیارن بیرون اونایی که گرفتار او و مقام و منیت و وابستگی های گروهی و شخصی و پولی و مقامی و ریاستی او اسی ریاست خودشه چطور میتونه منو تو رو آزاد کنه چکی میتونه آزاد کنه حسینه علیه که از این عالم رفته بالاتر لذا در عالم در مقابل معصوم سر سپرده میشویم ای خدا بگمار قومی رحمان تازه صندوق بدن ما را آخران از بند صندوق فسون کی خرد جز انبیا و مرسلون از هزاران کس یکی خوشمنظر است که بداند که به صندوق اندر است از هزاران کس یکی خوشمنظر است که بدانت کوب صندوق اندر است ما گاهی تو صندوق هواییم اما ما جستیم میگیریم من آزاده روشن اندیشه بیشار من گیر همین منیت من روشن اندیشم ای خدا اون زمان که مرا بیدار گردانی نسبت به این معنا که بدانم اسیر چه تعلقاتیم تا خودم و از این وابستگی ها برهانم از هزاران کس یکی خوشمنظر است که بداند کوب صندوق درست آن که داند تو نشانش آن شناس که ز روح این جهان دارد حراس میدونی نشانه اون کسی که میدونه این صندوق ها چیه و بیرون صندوق قرار گرفته و میتونه در صندوق باز کنه که اون یکی از تعلقات این دنیاوی میترس از امام حسین میخونم اولین خطبه صبح آشورا توجه داد از دنیا بترسید آخرین خطبه اصرا آشورا هم گفت از دنیا بترسید یعنی با وابستگی دنیا خودمون رو گول میزنیم با وابستگی دنیا در مقابل امام حسینم میتونیم بیستیم آن جهان را دیده باشد پیش از آن که بدان زد این زدش گردد ایان اون جهان را دیده باشد پیش از آن یعنی آقا کسی که از ابتدای ولادت توی صندوق بزرگ شده بهش بگید بیرون صندوق معنا داره باید بیرون صندوق رو دیده باشه وقتی اومده تو صندوق دلش بسوزه اگر بنده و شمای که آفتاب و دیدیم دریا رو دیدیم کوه ها دیدیم ستاره و آبشار و درختان و جنگل و گل و بل بل حالا بر مبنای یک سری مسائل مثلا در یه پناگاه زیرزمینی پنج پطبقه زیرزمین ده سال گیر کردیم تو دورها اون مثلا بهبوه جنگ های ده سال تو زیررزینیم نمیتونیم بیایم بیرون یه روز یه سوراخی روگزن پیدا میشه یه خورشید میاد تو این زیر شما با چه حسرتي نگاه میکنی؟ کی میشه برگردیم بریم بالا دوباره اون خورشیده بچه بیارو اقا بیای خورشیده ببینین یادش به خیر اون روزایی که بیرون بودیم خورشیدو و می دیدیم من ملک بودم و فرد بر این جایم بود آدم آورده در این دیر خررا آدم خرممان روز که از این منزل ویران بروم راحت جون طلبم وپی جانان بروم کجا بودیم تروز کنگره ارس همصففیر ندا در این دامگرت چ افتاده است اما کسی که در این ده سال تو این زیر زمین متولد شده. همین جا زندگی کرده همینجام بازی کرده همینجام دل خوش کرده حالا بهش بگید روی زمین دریا آبشار میگه چیه خبر ندارن اصلا چیه و همینجا دل خوش میکنه اونهایی که عالم ملکوت را دیدند کی امام معصوم پیغمبر علی و آل علی و کذالک نوریه ابراهیم ملکوت السماوات اونایی که اون عالم رو دیدن اومدن تو این عالم برای چی ما رو ببرن تو اون عالم و لذا وقتی که صحبت امام حسین میشه یا ایت عن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه یعنی کسی که مال عالم بالاتری تو رو فرستادیم تو این عالم قدرتو نمیدونن برگرد بیا مال خودمی اونا تو رو نمیخوان من تو رو میخوام فرشته ها منتظرم بالایی ها منتظرن او بر ایچه اومده بود اینجا ما رو با خودش ببره بالا لذا در روایات اهل سنت هم داریم سوائق مال ابن حجر قال رسول الله انا و اهل بیتی شجرتون فل جنه اقصان و هافت دنیا و من تمست سکبنا اتخذ الاربهی سبیلا من و احل بیتم اون درخت بهشتی هستیم ما مال عالم بالاتریم تو این آدم اونایی که میخوان از فرش سر از عرش در بیارن بیان بالا دست بندازن این شاخه ها رو بگیرن تا بیان بالا آن که داند تو نشانش آن شناس که ذ روح این جهان دارد هراس آن جهان را دیده باشد پیش از آن که بدان زد این زدش گردد ایان آن که هرگز روز نیکوران ندید او در این ادبارگی خواهد تبید دایمان محبوس اقلش در سور از قفس اندر قفس دارد گذر منفذش نی از قفس سوی علا در این قفس در این زندان در این صندوق روزنه ای که بالا رو ببینه نداره در قفس ها میرود او جا بجا در نبی این استتعتم تنفزو اشاره به سوره الرحمن لا تنفزو الا به سلطان در نبی این استتعتم تنفزو این سخن با این جان آمد زهو گفت منفض نیست از گردونتون جز به سلطان و به وحی آسمان لا تنفزوه لا به سلطان قبلش میگه یا معشر جنه ول انس جن و انس موجود دو بعدی مختارن که میتونن آزاد زندگی کنن میتونن برده بشن ای جنیان و این ها میخواید خارج بشید به اختار سماوات الا به سلطان سلطان حقیقی ملکیش ملکیش که خدا قرار میدهد. یعنی حق سلطه دارد یعنی ولی الله اعظم یعنی خلیفت الله نمی توانی از قفص تعلقات این دنیا خارج شوی مگر اون که وابسته به اون عامل شوی گفت منفض نیست از گردونتون جز به سلطان و به وحی آسمان هر زمان صندوقی عینا پسند هر لحظه در یک صندوق هستی هاتفان و قیبیانت میخرند بند هرچه گشته ای از نیک و بد. هر یکی بر تو چه صندوقی صد تا نگردی زین همه آزاد تو کیشوی ای جان زقم دل شاد تو زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود و اون علی مولانه نهاد گفت هر کس را منم مولا و دوست ابن ام من علی مولای اوست کیست مولا اون که آزادت کند بند در قیا ت برکنا. ما تو صندوق تعلقات دنیایی هستیم خدا مولا اونی که میخواد تو رو بخره و آزاد کنه قرار داده کیه ماورای این صندوق زندگی میکند زین سبب پیغمبره با اجتهاد نام خود و اون علی مولانه هاد کیست مولا اون که آزادت کند بندرقیت زپایت برکند کسی که خودش پاش تو بنده چجوری میتونه منو از بند در بیاره میخواد منو از بند دیگران در بیاره در بند خودش اسیر کنه